اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم امّا يتساءلون به نام خداوند بخشنده بخشایشگر آنها از چه چی چیز از یکدیگر سوال میکنند عن از خبر بزرگ و پر اهمیت الَّذی هم فیه مختلفون همان خبری که پیوسته در آن اختلاف دارند چون این نیست که آنها فکر می کنند به زودی می فهمند ثم کل باز همچنین نیست كه آنها میپندارند به زودي ميفهمند كه قیامت حق است الَم نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا آیا زمین را محل آرامش قرار ندادیم؟ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا و کوها را ميخهاي زمین؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا و شما را به صورت زوجها آفریدیم وَجَعَلْ لَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا و خواب شما را مایه آرامشتان قرار دادیم وَجَعَلْ لَلَّيْلَ لِبَاسًا و شب را پوششی وَجَعَلْ لَنَّهَارَ مَعَاشًا و روز را وسیله ای برای زندگی و معاش و فوق فوقكم سبعا شدادا و بر فراز شما هفت آسمان محکم بنا کردیم و جعلنا سراجا و هاجا و چراقی روشن و حرارت بخش آفریدیم و من المعصرات ما انفجاجا و از عبرهای بارانزا آبی فراوان نازل کردیم لنخرج به حبا و تا به وسیله آن دانه و گیاه بسیار برویانیم و جنات الفافا و پر پر این یوم الفصل کان می آری روز جدایی میاد همگان است یومای نفخو فیسور فتاتون افواجا روزی که در سور دمیده می شود و شما فوج فوج میایید و فتحت الاسماء فکانت ابوابا و آسمان گشوده می شود و به صورت درهای متعددی در می آید و سیرت الجبال سرابا و به حرکت در می آید و به صورت سرابی می شود این در آن روز جهنم کمین گاهیست بزرگه ل باغین معاب و محل بازگشتی برای تاقیان گران لوی نها احقااب مدت طولانی در آن میمانند لا از او اونفی مدم وشراب در آنجا نه چیز خونکی میکشند. و ننوشیدنی گووارایی اینله همین او جز آبی سوزان و مایعی از چرک و خون جزاء وفاقا این مجازاتی است موافق و مناسب اعمالشان این ممکنون یا چرا که آنها، هیچ امیدی به حساب نداشتند و بآیاتنا کذابا و آیات ما را به کلی تکذیب کردند و كل شيء احصيناه كتابا. و ما همه چیز را شمارش و ثبت کرده ایم تزوقوا فلن نزيدكم الا عذابا پس بچشید که چیزی جز عذاب بر شما نمی افزاییم این. این للمتقین مفازا مسلما برای پرهیزگاران نجات و پیروزی بزرگی است. و باغهایی سرسبز و انواع انگورها و به و خوریانی بسیار جوان و همسن و سال و جامهای لبریز و پیاپی از شراب تهور لا فيها و در آنجا نه سخن لغو و بیهوده ای میشنوند و نه دروغی این پاداشی حسابا این پاداشیست از سوی پروردگارت و عطیه ایست کافی رب السماوات والارض وما ما بینه مر رحمن لا یم منه خطابا. همان پروردگار آسمان و زمین و آنچه در میان آن دو است پروردگار رحمان و در آن روز هیچ کس حق ندارد بی اجازه او سخنی بگوید يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون الا من أذن له الرحمن وقال صوابا روزی که روح و ملائه که در یک صف می ایستند و یک جز به ازن خداوند رحمان سخن نمی و آنگاه که می گویند درست می گویند ذالک الحق فمن الى مآبا. آن روز حق است هر کس بخواهد راهی بسوی پروردگارش برمی گذیند این دا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یوم <تصفح> ينظر المرء ما قدمت یداه و یقول الكافر ویقول الكافر یا لیتنی و ما شما را از عذاب نزدیکی بیم دادیم این عذاب در روزی خواهد بود كه انسان آنچه را از قبل با دستهای خود فرستاده میبیند و كافر میگوید ای کاش خاک بودم و گرفتار عذاب نمی شدم.